بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد بسهجتم من درسات درسية سوري يوسف عليه الصلاة والسلام ويأفتد الشهار قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين قسم خورنا قسم يوت كذلك موضوز دارダران یوسف فلان صدا زدن جار زدن که گم شده جامی از جام های اون قصر از پادشاه مصر قالوا فما جزاؤه ان کنتم كاذبين الا شما اگر پیدا شد شما میگه ما دوز نیستیم نه دوز دیم, ما دوزیدیم ما نمیدیم برای فساد مشکلی نیست اگر خب اقرار کردید پاداش دارید اقرار نکردید بعد پیدا شد چی الان شما اقرار نمی‌کنید کار شما نبوده شما این کارو نکردید الان اون جامعه پیدا شد هنوز پیدا نشده پیدا شد شما قبل از این که الان بحث و جو و اینا بررسی بشه شما بدید یک عقوبتی رو بذارید برای اون دوزت یکی از شما دوزید از 11 نفر اون کسی که دوزیده جزاش چیه نمیشه انسان ها بدون جزارها بشن این قانون بشریه هر جا باشه چی میخواه روح باشه چی میخواد هواپیمایی باشه فضانوردی باشه قانون هایی هست حاکمه کسی که متخلف میشه عقوبت داره شرم هم همینه متخلف شدی تو قانونی داری الان مو از این آیات اومد. حکم الهی داریم الان اینجا تو قضیه این دوز و حکم وضعی ساختگی بشری داریم اینجا الان خوصاً الان گفتم میاد بحث این که دیانت پادشاه مصغر از دیانت یوسف بود علیه السلام یوسف شریعت مستقلی نداشت کتاب مستقلی نداشت یوسف علیه السلام رهرو رو راه جدش ابراهیم علیه السلام بود پیرو به اون صحف ابراهیم بود هنوز دین ابراهیمی به مصر نرسیده وقتی که ابراهیم رفت به مصر دستگیر شد دیگه با ساره بود. بعد اون زنا رو میگرفت بعد زنه گه داشت میکشت تا اون قضیه پیش میاد که میگه که این خواهر منه او بعد ساره رو میگیرن میبرن پیش پادشاه مصر و پادشاه مصر دستش خوش میشه و نمیتونه کاری بکنه دیگه بعد چند بار تکرار میشه پادشاه به کرامت این زن ساره رو میبینه زن پیغمبر یک کنیز هم براشون میفرسته اونم حاجر که مادر پیغمبر دیگر میشه اونم اسماعیل علیه السلام که هاجر رو در مکر رها میکنه ابراهیم علیه السلام و ساره رو در فلسطین پادشاهان مثل این چنین بودن، دیانت وسنی داشتن، برای خودشان قانون خاص خودشون داشتن. الان الله سبب کرده که این دیانت ابراهیمی اسلام به پادشاهان مثل برسه. یوسف تو جوانداختنش تا اینکه زندانی و الان به شیخ خزانه داره، دربار پادشاهی و امپراتوری مثل بشه. پادشاه مثل بشه اعتماد میکنه همه زمام امور رو دستش میده. اینجا یوسف علیه السلام اونها را بر اساس اون قانون بشری که در مخالفت با شریعت الهی شریعت الهی دوست در شریعت ابراهیمی باید یک سال بردگی بکشه به عنوان برده تعامل باش میشه این شریعت الهی بود در دیانت پادشاهان مصر این بود که شلاق بخوره کتک بخوره زندانش مندازن و اله آخر یوسف علیه السلام اینجا الان زمام امور به دستشه نمیخواد با اون قانون وضعی و شری با برادرش تعامل بکنه به اونها میگه پیش شما قانون شما در مجازات یک دوز چیه؟ دوز را چگونه شما مجازات می‌کنید؟ ما همون مجازاتی که شما برای دوز دارید ما همون کار را انجام بدیم از خودشون هم می‌پرسی یعنی فما جزاءه و قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبين. جزای شما چیه؟ یعنی قانون شما, شما چیه؟ نمی‌خواد به قانون خودشون عمل بکنه. چون پیغمبره. قانون وزیر رو نمی‌تونه تأیید بکنه. باید قانون الهی رو تایید بکنه. نمی‌تونه با حکومت غیر الله بکنه اینجا در اجرای علم حکم. نمیتونه اینجا هست که اونهایی که خودشون رو فریب میدن تو کشورهای غربی که تو پارلمانی مجلسی برن به گمان اینکه که بتونن تغییره بدم که برعکس میشه بعد میان برخلاف اون احکام رو تشریع میکنن برخلاف دین اسلام وای بر اونها نباید ما ادواتی باشیم ابزاری باشیم بر حکم غیر الله حکم غیر شریعت حکمه وضعی بشری بر خلاف دین مثلا دست دوز بود قد بشه بشر اجازه نداره که این حکم رو کنار بذاره باید این حکم اجرا بشه ما پیامدش رو در جامعه میبینیم وقتی که دست دوز قد نمیشه دوزی روز به روز بیشتر میشه دیگه راهزنی روز به روز بیشتر میشه باید احکام شریعت با تطبیق پیدا بکنه نمیشه که این احکام رو نادیده گرفت احکام الهیه بمسلحته بشره در هر زمان و مکانی خب یوسف علیه السلام میگه قالو فما جزاؤه ان کنتم کاذبین قالو جزاؤه من وجد فی رحلی فهو جزاؤه هر کسی پیدا شد همون سزاشو میاد ببینه فهو جزاء فهو اون خودش اون کسی که دوز اون جام یک جام بیشتر نیست و هر کدوم از اینها یک بار شطر داشتن از یک بار شطور بود هر کسی تو بارش بود جزایی که ما یعنی پیش خودمون داریم همون یک سال بردگی جزاشه کذالک نجد الظالم ما این چین میکنیم می هر کسی که زلب بکنه دوزی بکنه این عقوبتش میکنیم کذالک که نج ظال می و قبل وعاء اخی خاطر اینکه شک و شوه وارد نشه اول شروع میکنه مال بقیه برادرش غیر از بنیامین فبدا بعد اب اول اون برادر قبل اخی قبل از اون توشه و آضوق برادرش ثم از من اخی از اون ظرف و اون برادرش. اون جامعه رو در میاره ببینی. شما گفتید که ما دوز نیستیم شما گفتید ما دروغ نمیگیم قبلن یایتون هست که گفتم کد نه. یوسف که اینجا مکر به کار برد این... یوسف اینجا دروغ گفت نه صاحبت پیغمبر الهی علیه الصلاه و السلام مبراست اللهش بهش وحی کرده بود که این کارو بکنه و با الهام و وحی الهی است که یوسف علیه السلام داره این کارا رو انجام میده الله حکمت داره در این کار هدفی هست که باید به اون هدف رسیده بشه به نحو احسن تدبیر خیلی مهمه الله بهمون داره میگه اون کاری که انجام میدید روی هدف باشه روی برنامه باشه یک برنامه هست اینجا داره میرنجلو پس اینجنین الله برنامه به یوسف میده این چینین عملیش بکنه ما کنالیه خودخواه فی دین الملک آیا قبلی اشاره کردم دین ابراهیمی و دین پادشاهانم دین ملک پادشاه اینجا اجرای قوانین را جز دین حساب کرد از دینمونه دست دوست کردن و نمیدونم سنگسار و نمیدونم غیبت تهمت دروغ همین را جز دینه فرق نمیکنه چی میخواد اون حکم اجرای یک حدی باشه یا میخواد تطب امرو نهی از شریعت باشه چیزی گفته انجام بدیم که انجام بدیم و چیزی انجام ندیم همه اینا جز دینه اینجا پس اجرای حدود این قوانین که بشر میگه وضعیه هم جز دینه اون قوانینی که در شرع آمد در بحث دزدی و بحث قتل و بحث اینا احساسو اینا همه شریعته مشخص کرده که این چقدر عقوبت بشه اون چقدر دیه چقدر فنان چقدر هم مشخص کرده شر کفاره ها مشخص کرده پس این دین من دراوردی اونها رو هم اسمش گذاشت دین اون دین پیش الله پسندیده است که اسلام فقط ان الدين عند الله الاسلام چون دین های دیگر هم هست الا الله الدين الخالص دینی که توحید درش که یک تا پرستی درش هست دینی که شریعت الهی دین برحقه ولی دین پادشاه نه بر حق نبود دین وضعی بود من دراوردی بود خودشون برای خودشون این گذاشته برای جلوگیری از میگه پس الله میگه ما جای یوسف را مسخر میکنه بر برادرانش و خود یوسف هست که اون جامعه رو در میاره میتونه اینجا عقوبتشون بکنه یوسف میتونه انتقام بگیره یوسف دنبال انتقام نیست علیه ساعت و سل سا. یوسف داره وحی و پیگیری میکنه یعنی اون در پی اجرای وحیه اون چیزی که الله ازش خواسته الله نمیخوااست که نمیخوادم با این مک کسی در بر کسی زل واقع بشه اینجا زل می واقع نمیشه اینجا حق یوصففه براادرش داره گرفته میشه از الله خودش اوامکنه اونا مک کردن که اینا رو خا و ذلیل بکنه الله داره عزتشون میده برخلاف اون مکرشون الله میخواد نشونمون بده چطور الله جواب مکر ظالمان رو میده کسی که زل بکنه در حق کسی چطور دست مظلوم را میگیره زمان برده شاید 10 سال بی سال گذشته زمان رفته گذشته و لیکن الله رها نکرده الله ظالم را نرهام نمی کنه ظالم را نرهام نمی کنه حق مظلوم را خواهد گرفت ما كان لياخذ اخا في يد الملك يشاء الله اگر الله نمی خواست اینجنی نمیشود الله خواست که اینجنی بشه و با این برنامه به این صورت پیش رفت که حکمی که میدنم خودشون راضی باشن و الله هم راضی باشه خوشنود باشه بر اساس و حکم خودشون پس باید یک سال بنیامین برادر یوسف کجا بمونه باید در مصر بمونه پیش برادرش یک سال به عنوان برده نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علي گفتم کنید سوره ابتدا سختی های یوسف رو میبینیم سختی های بنیامی رو میبینیم الان صورت قضیه میگه الان دیگه برعکس شده این همونهایی هستن اصلا دست به التماس افتادن کیان همونایی که اونجا با قدرت خودشون اومدن یوسف را خار بکنن الان یوسف شده عزیز اینا شدن خار ظلمشون دامنگیرشون شد اینجا مکن لیا اخذ اخوه فی دین الملك الا انشاء الله نرفع درجات من نشا این چنین که الله میگه ما کسانی که بخوام رو بالا میبریم یوسف رو بالا برد نرفع درجات من نشا اون چیزی هم که انسان رو بالا میبره علم گفاله الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات این درجه هست این درجه که امن بالرفعت نه اینکه در آخرت فقط رفعت و منزلت خاییده شود در همین دنیا هم الله بد عزته و شرف بده مقام میده و فوق كل دي علم علي بدونيد هر چقد شخص عل داشته باشه درك داشته باشه هر چقد داشته باشه خرد داشته باشه ميونه الله عالم و علم بشر و علم الله قابل قياس نيست بدونيد هر چقد عل داشته باشي شما محتاج علميد شما محتاج اون عالميد كه شما رو مدد بکنه با علمش و يادتون بده و كسي هست از اون بالا كه بر شما ناظره میشنبه و میبینه و فوق کل دیگه علم علیم الله علیمه علیم. الله میداند از دل شما آگاهه از آیندتون اون چیزی که خواهد شد آگاهه شما نمیدونید چی میشه در آینده چی نمیشه سختی های خودتون سختی های خودتون را اون مقدرات را تلخ نشمورید بدون که مصلحت شماست الله خیرخواه شماست الله میداند از اون چیزی که شما نمیدونید علم شما اندکه فوق کل بی علم هر کسی علم فکر میکنه که این به درد جامعه میخوره اون به درجه جامعه میخوره بدون که الله عالم از اوناست فکر نکنن که حکمی را عوض بکنند بهتر از حکم الله میشه حکم الله با حکم بشر قابل قیاسی چون الله علیمه مخلوقات علمشون اندک قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. الله این چه آدم در این موقع قرار بگیره، او را از پدرش جدا بکنن، بعد تو چاهش بندازن، بعد فروخته بشه، بعد زندان بشه، بعد الان همه کاره اونها هم بشه، زمان امور دست بگیره، در اون مقام عزتم واقعه بشه، بتونه را زندان بکنه، بکشه، همه چیز. الله او را چیره کرده بر اونها، مسلط شده یوسف بر اونها الان، در سلطه یوسف انلا، همه کاره امپراتوری مثل یوسفه بعد جلوه ی یوسف، یوسف میگن اگر بنیامین دزدی کرده، یوسف هم دز بوده. فقط سرق من قبل قبل از این برادرش هم دز بوده شما باشید چه کار میکنید حسن قابل نیست همون که رسول اعظم میگن تعجب میکنم از صبر ایشون تا بفهمید که الله چه کسی رو به پیغمبریش انتخاب کرده این مقام شرف نبوت رو بدونید انتخابی اکتسابی نیست تا بدونید اون بنده واقعی الله کیه اون کسانی که الله از عباد صالحینش یاد میکنه ولی کاغمین الغیز بدون این درجه ای کاغم غیز یه یعنی چی؟ مثال تطبیقیش داره برات میزنه مثال عملیش نه من میگم من جلوش در میام فکر کرده من زبان ندارم فکر کرده من نمیتونم از خام دفاع کنم نشونش میدم این حال روز خودمونه فکر کرده من بی کسو کارم تو دعوا ها دیگه بعد دیگه هلا میرسه من پارتی دارم من نمیده فلان افسره فلان نماینده مجلس همه چیز دارم دیگه مونا متوسل میشه به خاطر چی؟ به خاطر که یک کسی را سرکوب کنه یعنی به اون قدرتش اون زور و بازوش مینازه. بعضی از قدرتشون این چنین استفاده میکنن که تو را لحت بکنن پا رو سرت بذارن. این در مقام قدرت یوسف رو در نظر بگیرید در این مقام جایگاه ای امپراتوری واقع شده جلوب روش هم بهش میگن که برادرش از قبل دزدی کرده دوز بوده. کی اون طرف؟ قدر یوسفم هم داره میشنبه. از مقام عملی کاظمین الغیضه. کاظمین الغیض. غیظ و خشم خودش را فرو می بره. چی میگه الله میگه فسرها یوسف فی نفسه. هر حرفی به گفتن لازم نیست. برادرم، خواهرام، هر کسی صدای ما رو میشنوه. هر حرفی نیاز نیست که تو بگی. از دلت بگی. حالا کسی دوست نداری، بدت میاد از کسی. هر حرفی نیاز نیست که انسان بگه بر سر زبان بیاره. چرا فکر میکنی اون چیزی که تو دلت باید بگی؟ لازم نیست که هر حرفی رو ما بگیم. عز یوسف علیه السلام یاد بگیریم که چطور خشم خودشو فرا فرو میاره خصوصا در عصبانیت صحابی میاد نظر اساس اصلا میگه یا رسول الله اوصنی وصیتاه که لا تغضب قال اوصنی قال لا تغضب قال اوصنی قال لا تغضب وصیتاه و ناسیتاه و خشمین نشو خشگین نشو خشگین نشو, نشو. خشم چون فکر دعواها و سر ارث و میراث و غیر و دعوا و مرافا سر چیه حرف و سخن خوب از هم دیگر نمیشم یک حرف بعد نسنجیدش میشه یادت تو قم داری مثلا به خانمت یه چیزی گفتی میذنی تو سرت مواظب حرفت باش در خشم صحبت نکن یاد بگیر اینجا مثال اولیشه یوسف الگوت الله داره برای الگوی من و شما مثاله به این پیغمبرش میذاره که ازش یاد بگیرین. یوسف در دل خودش نگه داره این قضیه نمیخواد هنوز فاش بشه یعنی یوسف خودشه ولن یبدها لهم ابراز نمیکنه هیچ حرفی نمیزنه یعنی انتقاد نمی کنه در مقابل این تهمت هیچ حرفی نمیزنه جایی بس باید در مقابل تهمتی بهتان دروغ انسان وا ساکت بشه مصلحت باد بسنجی جایی بود مصلحت را انسان حسنج این مصلحت سنجی مهمه انسان کوسن در جامعه و محیطی که درش زندگی پر از حسوده پر از دشمنی که در کمینگاه انسان نشسته که یک لغزشی از تو ببینه مد به نظرتو باشه توصیه رسول الله صلی الله علیه و آله قضو حوائجكم بالکتمان کل ذی مغبون اینها توصیه رسول الله صلی حاجتی داری لازم نیست از درآمدت کارو کسبیت بگی الا که در مقام بازخواست خرار گرفتی یا طرف یک شخص خاصیه حاجتت را با کتمان نگو که میخوام ماشین بخرم، خونه بخرم، این کار بکنم بهمانم، این خریدم، اون خریدم چرا اون امرار معاشت، زندگیت، خرید و فروشت معاملت به این میگی؟ خریدی، الله خیر و برکتش برات بده لازم نیست که کسی بدونه کل دی نعمت مغبون چون هر صاحب نعمتی مورد حسادت واقع میشه بدونید نعمت لازم نیست نعمتات را کسی بدونه جای خواب نعمت کسی بدونه برای جونش میشه یوسف علیه السلام خواب نعمت لا تقصص رؤیه که علی اخواتیک نگو چرا یکی دودک کهی در مک میکنن علیه بخاطر خواب نعمت شد خواب مایه حسادت شد حتی در خواب بعضی حسادتت میکنن نیاز نیست که حتی خوابتن به بگی. بعضیا مین میگم یک بار رو تو خواب دیدن دیگه به فلانی گفتم دیگه ندیدم خودت خودت محروم ساختی چرا بگی که محروم بشی جای تعصف نداره چرا بگی خودت نعمت را از خودت میزنی خودت محروم میسازی باش فاصبره یوسف فی نفسی ولم یبدها لهم بدان میکنه اظهار نمیکنه قال انتم شر المكانا شو جا برید شرید والله اعلم بما تصفون الله امدانا نسبت این حرفایی که دارید میزنید والله اعلم بما تصفون قالوا یا ايها العزيز ان له ابا شيخا کبیرا فخذ احدنا مکان لو مد به میونی به خودمون برای جی برای اینکه بنیامین رو بدن یکی دیگه رو بگیرن بجاش برادر یوسف رو بگیرن بر بگردونن دارن حالا اسخاهی میکنن به وانی تراشی قالوا یا ايها العزيز اي عزیز مصر ان له ابا شيخا كبيرا اول پدری داره این فرزند این بچه پدری داره که شیخ مسنه و بزرگ سنی ازش رفته هرچی باشه اینا فرزند پیغمبره فرزند اسرائیل یعقوب علیه السلام هرچی باشه احترام و ادب یاد گرفتن تقدیر بزرگ را یاد گرفتن پدرشون یادشون داده و این در تمام ادیان هست ليس من من لم از ما ازماني کسی که احترام و حرمت حشمت بزرگتر را نگه نداره بزرگه پدرت یاد. حق نداری صدا تو بر پدرت بلند بگویند سشت واقعا عیب اگر در قران نگفته بود زشت در شریعت ما که الله سخت برخورد میکنه ولتقول لهما اوف ولا دارم به گردنت این جایگاه پدری یاد بگیر از یوسف علی و برادران یوسف اگر از پیغمبر الله یاد میگیری اس اون اشخاص عاصی و گناهکارت که یوسف میگه شما هر جا برید شرید شر از اینها یاد میگیری با وجود اون شر و شرورشون ولی بزرگتر حرمت خودشو داره پدر باید حرمتش نگه داشته باشه این اثر تربیت این وجدان این زمیره هر چی باشه پدرته پدر رو با برستر و چش و روی دستان بذاش نگ با بی ادبی و بی احترامی باش با برخورد بکنی هر چقدر پدرت هم کتکت بزنه بدی بهت بکنه از مالت برداره چون چه صحابی اومد نزد رسول گفت انت و مالک ال خودت و مالت مال پدرتی در حکم شریعت داریم اگر پدر پسرش رو بکشه قصاص نمیشه چرا انت و مالک ال پدر قصاص نمیشه حکم شریعت انت و مالک چون پدر وسیله وجود اومدنت مالت داراید مال پدرت خودت مال پدرتی بس حرمت پدر خیلی بزرگه کار الله داره از باب یاداوری میگه اینها اول احترام و حرمت پدری رو یاد کشیدن ما پدری داریم محترمه بزرگ هم بزرگ قوم هم سن و سالی ازش رفته کبیره هم بالا کبیری کبر و بزرگی از لحاظ علم و جایگاه مکانات اجتماعی هم از اون بزرگی و سن و سالی که شیخ ازش رفته فخود احدن مکانه یکی دیگر را بگیر پدر ما که سنی ازش رفته محتاج این فرزند کوچک ما سنی ازمون رفته مشکلی نیست ما نباشیم پدر میتونه تحمل بکنه ولی این جگر گوششه رحمی بکنید از باب لطف وارد شدن به دوم یکک دوم رحمی به حال اون پیرمرد منده پسر به دردش میخوره شفقتی نه مهربانی نسبت این فرزن ان نراک من المحسنین تو ادمه محسنی هستی اون محسن که الله میگه و این محسن کی نه اقرار میکنه الله میخواد بگه اون کسی که پیش من محسن بشه نزد خلق خدا هم محسن میشه مردمم با چشم نیکی نگاهش خوب باشید نزد الله که نزد مردمم خوب میشید سبحان قناه حمد سبحان الله حمد و صلی محمد و علی محمد